درود شنوندگان و هموطنان عزیز آغاز فصل زمستان و یلده ایرانی رو به همه شما یاران تبریک میگم همچنین با توجه به جناب جنابای شکری به ایشان هم تبریک میگیم امیدواریم همیشه سالم و سرزنده باشن اناوین خبری مربوط به پناهندگان در هفته که گذشت رو به سم شما میرسون 28 کشور عضو اتحادیه اروپا در ساختمان شورای اروپایی گرد هم آمدند تا برای استراتژی بلند و کوتاه مدت اتحادیه اروپا بحث و گفتگو کنند. بحران پناهجویان، اجرای کاهش قدرت برقی از کشورهای شرق اروپا به دلیل عدم تعهد آنها به مفاد مهم منشور اروپایی و واکنش به تصمیم دونالد ترامپ به رسمیت شناختن در به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل محورهای مهم این بحث بود بحران پناهجوان و سه دیدگاه از رهبران اروپایی رئیس جمهور فرانسه یکی از اولین مهمانان مهم این نشست است درباره بحران پناژوان صحبت کرد وی از مواضع پیشین خود مبنی بر کمک به کشورهای غیر اروپایی درگیر بحران پناچوان خصوصا کشورهای شمال آفریقا دفاع کرد و گفت حتی اگر لازم باشد باید مداخله نظامی کرد تا این بحران به کشورهای مبدع از بین برود. موزنه اصلی اینجاست که اعتاد اروپا در دو سال اخیر برای مبارزه با مهاجرت های خطرناک و تودوار پناچوان خصوصا از کشورهای شمال افریقا کمک های مالی زیادی به دولت‌هایی میکند که به گفته سازمان عفو بین و ملل دست دستکم در مورد لیبی با قاچاقچیان انسان و شورشیان همدست هستند و میلیون ها یورویی یورویی که اعطای اروپا به این کشورها میدهد در جریان فساد مالی خاکستر شده و پناهجوان قربانیان اصلی این سهلنگاری اروپا هستند با این وجود ماکرون رئیس جمهور فرانسه با وجود اتهامات روزهای اخیر سازمان حفه بین‌الملل درباره شراکت اروپا در شکنجه و آزار و اذیت پناهجویان در لیبی، بر گسترش همکاری‌ها با دولت‌های شمال آفریقا در جهاد پیشگیری سرایت بحران پناهجویان به قاره سبز تاکید کرد. سخنان او در مورد انتقاد شدید برقی از رسانه‌های آلمانی قرار کرد آنگلا مرکز صدراظم آلمان که همواره نشان داده دیدگاه متفاوتی نسبت به دیگر رهبران اروپایی به بحران پناهجویان دارد به خبرنگاران گفت همبستگی و اتحاد در زمینه پذیرش پناهجویان اگر جهتدار و انتخاب شده باشد بسیار خطرناک است و جایی در اتحاد اروپا ندارد آن کشورهایی که مرزهای ورودی پناهجویان هستند مسئولیت سنگینی دارند مشخص شده که پیمان دوبلین کارایی ندارد و ما به همبستگی بیشتری در اروپا نیاز داریم انگرامرکر همباره انتقاد شدیدی از کشورهای شرق اروپا از جمله لهستان جمهوری چک، مجارستان و اسلواکی کرد چرا که به گفته صدر از آلمان، نه تنها این کشورها سهمیه بسیار پایین پناتجوان را نمیپذیرند بلکه پناتجوان در این کشورها مورد آزار و اذیت و شکنجه فراوان قرار می گیرند در مقابل دیدگاه صدرازم آلمان نظر رئیس شورای اروپا دونار توسک قرار دارد توسک با اصلیت لهستانی نگاه نزدیکری درباره بحران پناچمان به رهبران مجارستان و لهستان و جمهوری چک دارد او به نوع ازصد رزم آلمان در این باره انتقاد کرد و گفت جدال میان شرق و غرب اروپا در این باره بیهود است و باید به منافع مشترک فکر کرد گفت زمانی که با مشکل و بحران پناهجویان مواجه می شویم همواره تنش ها میان شرق و غرب است و بین شمال و جنوب قاره اختلافی نیست باید این مشکل نیز حل شود توسک در, در مقام میزبانی این نشست حواداران زیادی در میان رهبران شرق اروپا دارد ویکتور اوربان نخست وزیر مهاجر ستیزم مجارستان که به دنبال عدم رعایت مفاد منشور اتحادیه اروپا کشورش را به تحریم و های اروپایی نزدیک کرده درباره بحران پناهجویان مانند همیشه در صحن شورای اروپا تکرار کرد کشورش حاضر نیست سهمیه پذیرش پناهجویانی که کمتر از 2000 نفر است را بپذیرد و در مقابل حاضر است بودجه لازم برای مبانعت از حضور پناهجویان در قاله سبز را تقبل کند نظرات دو نخوص وزیر و جمهوری چک اعتدالگرانه تر از نخوص وزیر مجارستان است اما هنوز هیچ کدام از این کشورها تن به پذیرش از پناهجویانی که در سحنی اتحادی اروپا تعین گردیدن ندادند یه خبر از سربستان آغاز زمستان و سرد شدن هوا زندگی هزاران پناسجورا در سربستان با مشکلات زیادی برو کرد. اغلب این پناهجویان در اردوگاههایی نزدیک زندگی می‌کنند که خود بنا کردند و فاقد امکانات رفاهی است. بر اساس آمار دست کم 300 تا 400 نفر در چندین اردوگاهی ساکن شد. و حدود 3 تا چهار هزار نفر نیز به اردوگاه‌های دولتی رفتند. در این میان فعالان اجتماعی در طول زمستان در این اردوگاهها غذا و نوشیدنی گرم توضیع میکنند بیشتر پناهجویان سروستان از کشورهای افغانستان سوریه و آفریقای سیاه هستند این افراد قصد دارند با گذر از کشورهای بالکان خود را به کشورهای ثروتمند اروپایی برسانند اما اقدامات سختگیرانه و کنترل شدید مرزهای اروپا آنها را ناگزیر کرده تا در سروستان بمانند این افراد مراتب تلاش می‌کنند تا از مرز بگذرند و وارد اروپا شوند اما با سختگیری پلیس مجبور بازگشت به با اردوگاه می‌شوند که از هرگونه امکانات محروم است. و آخرین خبر از امریکا یک پناهجوی 25 ساله عراقی مقیم امریکا به جرم کمک به گروه تروریستی داعش به مجازات 16 سال حبس محکوم شد. یک دادگاه ایالت تگزاس در هیستون عمر فرج سعید هردان را به این مجازات حبس محکوم کرد. هردان علاوه بر کمک به داعش به توطعه برای تهیه بمب دستساز به منظور انفجار در یک مرکز خرید هیستون متهم است. هردان 25 سال ریشه فلسطینی دارد و در عراق به دنیا آمده. او در کمپ پناهجویان در عراق و اردن زندگی می‌کرد. تا اینکه در سال 2009 به عنوان پناهجو وارد آمریکا شد. دو سال بعد او در سال 2011 گرین کارت آمریکا گرفت. های امنیتی آمریکا میگویند او از سال 2013 ارتباط با یک پناهنده دیگر در کالیفرنیا را آغاز کرده و با او درباره پیوستن به گروه انصره برای جنگ در سوریه بحث کرده. یک سال بعد یعنی در سال 2014 سعید هردان تمرین تیراندازی کف را آغاز کرده و همزمان در پوست های آنلاین از داعش حمایت می‌کرد. وزیر دادگستری آمریکا میگوید این فرد در سال 2016 پس از اینکه سعی کرد برای گروری تروریستی خارجی وسایل تهیه کند، بازداشت شد. لباتون خندون، دلاتون شاد، تندرستیتون پایدار و سفرهاتون پرم